يا ذاكرا اصحابكم متادبا وعارف عزيزان محترم سروران گرامی قدر ما بنوان مسلمان و اهل سنت این را بدانیم که افضل انسان ها از مسلمین بعد از انبیا عليهم الصلاه والسلام بعد از پیامبر صلی الله عليه و السلام اصحاب ایشان هستند افضل بشرن بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم افضلترین انسانها اصحاب پیانبر و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم هستن فضایل بسیاری در قرآن و سنت ما داریم که این بحث کتاب ها نوشته شده ببینیم شما ابن کسیر در تفسیرش چه بحثاری میاره در تاریخ چه بحثاری میاره و علمای دیگر امام بخاری محدثین کرام ائمه بزرگوار در قرد صحابه چه نظری داشتن؟ امام ابو حنیف رحمت الله علیه صحابه چی میگن؟ اقوالی دارن که اقوال بسیار بارسی هستن میگه اون گرد گباری که در بینی اسب مثلا صحابی که اونجا ماویی رو مطرح میکنه میگه هزاران از ما تابعین رو با هم جنب کنید فضایل اون نمیرسه یعنی این اقوال رو یارن نسبت به صحابه چون صحابه مقام بسیار بالای رو دارن حاملان دین بودن یعنی دین رو شفاحتن از رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفتن و به نسلات بعدی منتقل کردن در میدان عرفات صحابه بودن که پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب کردن ولی یبلغ شاهد منکم الغائبه اونا صحابه بودن ما شما نبودیم اونا یعبادی ها نبودن تاوین حتی نبودن اونا یاران. و اصحاب فیانبر صلی الله علیه و سلم بودن پس فیانبر بر صحابه یک اهمیت و فضال خاصی رو بیان فرمودن که وقت اجازه نمیده. اما به صورت اختصار عرض میکنم خدمت عزیزان کسانی که نقام صحابه رو بخوان بیان پاین یا به اصحاب بکنن ادناترین صحابه باشه یه اون صحابی که در فتح بکه مسلمان شده که مقامش از سابقین اولین کمتر هست از محاجرین انصار کمتر هست چون قرآن کریم صحابه رو تقسیم بندی کرده مقام صحابه رو ما صحابی داریم که قبل از فتح مکه مسلمان شدن اونا مقامشون مقام بسیار بالای هست و صحابی دارن که بعد از فتح مکه مسلمان میشه و کلا وعد الله رو حسنا. اما همگی رو اللہ وعده وعد کو دادن نزا سب صحابه تان صحابه توحین به صحابه حرام هست حتی ما از ابو زرعی ایکی از شیوخ امام مسلم که امام مسلم صحیح خودشازیشون روایت کرده از مشایخ امام مسلم بوده در حدیث از مشایخ بزرگش از کبار مشایخش بوده امام ابو زرعی رحمه الله میگن ادا رایت الرجل ینتقیسو امران من الصحابه فعلم انه زندیق نگه اگر شما شخص رو بیدید که مقام صحابه رفایل میاره تان می کنه نسبت صحابه گستاخی می کنه بدانید که او زندگ هست فعلا انہو زندگ کن او بیدین هست زندگ هست زندگ به چه هست بیدین در صلاح شما دین نداره، ایمان نداره، او زندگه و بعد میگه و ذالک ان القرآن حق و سنت حق و حق و ما جابی حق این جملهی حسکی امام ابو زور میگه میگه قرآن حقه، حق میگه پیامبر حق حق آور دی و ما عدا الینا ذالک کلیه الا من السحابه میگه اینا به نرسی دن قرآن به نرسی دن سنت به نرسی دن, دن اقوال پیامبر به نرسی دن مگر اسطریق کی؟ الصحابه فسنا ناقلان و حاملان دين بودند نه صحابی مانند طلحه زبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای زبیر در غزوه خندق و احزاب چه جمله‌ای بیان کردند ان لكل نبي حواری وحواری زبیر ابن الاوان در مورد طلحه بن عمر صلی الله علیه و سلم چه فرمودن؟ اشاره کردن دون کسانی که قاتلین زبیر و تلحیبودن گفتد اونا منافقند وقتی که اجساد تلحیب زبیر درمیان کشت شغال لشکره امام علی رضی الله عنه پیدا شد علی گفت که حقا پیامبر صلی الله علیه و وسلم گفته قاتلین شما منافقند این جمله علی هست نسبت به تلحیب زبیر ان چنان نراحت شدند علی رضی الله عنه از شهادت تله و زبر که نه دوتا بودن دوتا از کبار صحابه بودن و پیانبر صلی اللہ بعد از خلفه راشدین اولین کسانی که ذکر میکنه از عشره مبشره تلهتو فی الجنه و زبر ابن معمان فی الجنه اهل بهشتان الان ما خودمون قضاوت بکنیم ما قول الله و رسول را مقدم بدانیم یا قول افرادی بیبین زندگی که ثانبه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم می فنند غستاخی می کنند نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلام این الله و رسول الله صلی الله علیه و سلام محسوب میشه چون الله و رسول اعلام رضات کرده الله متعال لقد رضي الله عن المؤمنين اذا يبايعونك تحت الشجرة اعلام رضات کردند لا تو سب من من اصحاب پیامبر کرده انکار نکنید. پس کسانی انکار میکنند، این تان به هم به آیات قرآن هست، هم به اقوال رسول صلی الله علیه و سلم هست. اون داریم که الله متاهل کسانی که نسبت به اصحاب فیامبر صلی الله علیه و سلم گستاخی و بی ادبی تان میکنند. الله متعال آنچه حقشون هست. الله متعال بنا بده و قطعا هروردگار و متعال مدافع حق و دینش هست و این اینا بی جواب نمی مانند عزیزان اما بنابرا حکمت و مسلح الله که متعال دارند مجازات میکنن افرادو این فرصه الله که اللہ متعال به ظالمین میده این سنت الهی هست که ظالم بیشتر جرم بکنه بیشتر جنایت بکنه تا سرانجامش مجازات بشه من زوج خیر العجم بيهكم اقل جماجمكم من الالباب تنجون في درب الضلال المعتب قد اخفيت عثراته بظبا